دوست خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. امروز باز هم به بررسی کتاب لوقا از عهد جدید ادامه میدیم و با هم نگاهی به اهمیت توبه و مفهوم اون خواهیم انداخت و فرق بین شخص توبه کار و نو توبه کار رو خواهیم دید. دعا میکنیم کنیم خدا گوشها و دلهای شما رو باز کنه تا اون چرا که خدا میخواد یاد بگیرید و اگر نیاز دارید توبه کنید این کار بکنید با هم به درس امروز معلممون گوش کنیم. دانشجویان عزیز خوشحالیم که یک بار دیگه با شما همراه هستیم من نمیتونم تمامی مطالبی رو که دوست دارم مورد بررسی قرار بدم اما سعی کنم تا اونجایی که میتونم چیزی را از قلم نندازم شما رو تشویق میکنم که انجیل لغوا رو به دقت بخونید و بذارید پایان این بررسی شروعی باشه برای شما تا انجیل لغا رو به دقت مورد مطالعه قرار بدید. وقتی که انجیل لغا رو مرور می‌کنید، به چیزهایی در لغا نگاه کنید که در انجیل متا ثبت نشده‌اند. اینجا میتونید تعالیم شگفتانگیزی رو از عیسی ببینید. مثلا در باب 12، مسئله ثروتمند نادان رو دارید. این تعلیم در پاسخ به مردی داده شده که نزد عیسی آمد و به او گفت ای استاد، به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کنه. از اینجا معلومه که مردم بر سر چیزهای دنیایی با همدیگه نظامی کردند. عیسی جواب داده ای مرد: چه کسی مرا در میان شما قاضی و حکم قرار داده است؟ بعد به مردم فرمود: مواظب باشید خود را از هر نوع حرص و طمع دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمی دهد. بعد عیسی این مثل را در مورد ثروتمند نادان برای آنها آورد. این کسی که عیسی به او نادان میگه مشکلی داشت. او نمیدونست با تمام ثروت و داراییش چیکار بکنه او مشکلش رو اینطور حل کرد که تصمیم گرفت انبار بزرگتری برای کالاهای خودش بسازه و بعد با خودش میگه خب فهمیدم که چیکار کنم انبارها رو خراب میکنم و اونها رو بزرگتر میسازم قلب و سایر اجناسم رو جماوری میکنم آن وقت به خود میگویم ای جان من تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان درازی کفایت می کند. آسوده باش. بخور و بنوش و خوش بگذران اما خدا به او فرمود ای احمق همین امشب باید جانت را تسلیم کنی پس آنچه ای مال چه کسی خواهد بود این است عاقبت مردی که برای خود ثروت می ولی پیش خدا دست خالی است بنابه گفته کتاب مقدس وقتی شما ارزش های زمینیتون رو شکل میدید، باید به واقعیت مرگ و دنیای ابدی هم فکر کنید بر اساس این تعلیم عیسی. که به مسئل ثروتمند نادان معروف هست، اگر شما دنیای آینده رو در نظر نگیرید، نادان هستید. تعلیم بزرگ دیگری از ایسا در لغا هفده هست که اهمیت گناه ناسپاسی رو نشون میده. ایسا ده جزامی رو شفا میده و فقط یکی از اونها برمیگرده تا از او تشکر کنه. ایسا میپرسه مگر هر ده نفر پاک نشدن، پس آن نه نفر دیگر کجا هستند؟ بسیاری معتقدند که این تعلیم چیزی رو برای ما در مرکز اهمیت قرار میده. در کتاب مقدس جزام تصویری از گناه است. بنابراین شفای جزام تصویری از نجات رو به ما نشون میده. به طور کاربردی به نظر میاد چیزی که این داستان به ما نشون میده، اینه که وقتی مردم نجات پیدا میکنند فقط ده درصد از اونها بر می و از خدا برای نجاتشون تشکر میکنن. از تمام کسانی که نجات پیدا کردند، احتمالا 90 درصد هرگز نمیان خدا رو به خاطر نجاتشون بپرستند. ما باید مثل اون یک جزامی که شفا پیدا کرد و قدر شناس بود باشیم به نظر میرسه کاربرد این داستان همینه مایلم که بررسی انجیل لغا رو با بررسی دو مثال به پایان ببرم که معتقدم باید به همراه هم بررسی بشن اولیش در لغا باب 18 هست همچنین ایسا برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند. و سایرین را از خود پست‌تر می‌شمردند این مثل را آورده و گفت دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتن، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت ای خدا تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم هفته ای دو بار روزه می گیرم، ده یک همه چیزهایی را که به دست می می‌دهم اما آن باجگیر دور ایستاد و جرعت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به سینه خود میزد و می گفت ای خدا به من گناهکار رحم کن بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری هر که خود را بزرگ نماید، خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرافراز خواهد گردی در این مثل شما دو مرد رو می بینید که در حال دعا هستند. شما دو نفری رو دارید که نشونگر دو گرایش مختلف هستند و بعد دو اظهار عقیده رو میبینید اول فریسی رو میبینید که در معبد دعا میکنه او در جای برجسته ای در معبد ایستاده و دعای او همش در مورد توصیف خودش هست. عیسی با تندی میگه من فکر میکنم او برای نشان دادن خودش دعا میکنه دعای این مرد از خودش شروع میشه همش به خودش مربوطه و هرگز فراتر از خودش نمیره. او برای خودش دعا میکنه او مشکل منیت داره چون که در دو جمله او کلمه من رو پنج بار به کار میبره او میگه خدایا من تو رو شکر میکنم کنم که من مثل دیگران نیستم من هفته ای دو بار روزه میگیرم من از تمام دارایی که دارم ده یک میدم دعای او این بود ما مجبوریم که اینجا کلمه دعا رو به کار ببریم دعا کردن عملا یعنی طلبیدن حالا این فریسی چی طلبیده این فریسی هیچی چی نمیطلبه او به خدا میگه و اگه واقعیتش رو بخواید، او اساساً به کسانی که توی معبد هستن داره میگه که چقدر آدم بزرگی هست. این فریسی شکر میکرد که مثل بقیه آدم ها نیست. مخصوصاً مثل خراجگیری که در گوشه ایستاده بود و با فروتنی دعا میکرد. این مرد اول بود و دعای او و وضعیت او. دعای او تصویری بود از غرور و خود آدلبینی. یادتون باشه این مثل برای کسانی آورده شده که به پارسایی خودشون مطمئن هستند و دیگران رو تحقیر می کنن. این داستانی که عیسی گفته خطاب به کسانی هست که شبیه اون فریسی هستند دومین مرد داستان یک خراجگیره یعنی کسی که از همکیشان خودش برای رومیان مالیات جمع میکنه خراجگیر مثل یک معمور مالیات معمولی نیست او شخصی کار هم محسوب میشه این خراجگیران خودشون رو به رومیان فروخته بودند رومیان بر یهودیان غلبه کرده بودند و این خراجگیران برای فاتحان رومی کار میکردند. اونها غالبا با بهرهگیری از حمایت رومیان به قوم خدا می می‌کردند. اونها درصدی هم برای خودشون میگرفتند و کسانی که ضعیف بودند و نمیتونستند کاری در این مورد بکنند از اونها نفرت داشتند. ملاحظه کنید که در اناجيل خراجگیران طبقه خاص خودشون رو داشتند. نویسندگان اناجيل اسم خراجگیران رو با گناهکاران یک جا آوردند این به این معنی نیست که خراجگیران گناهکار نیستند، بلکه نشون میده اونها گناهکارانی بودند که طبقه خاص خودشون رو داشتن اونها نه تنها گناهکار بودند، بلکه هم گناهکار و هم خراجگیر بودند. در نظر یهودیان مغلوب خراجگیر بودند، حتی بدتر از گناهکار بودن پس مرد دوم در این داستان عیسی کسی هست که بدتر از گناهکار شناخته میشه او در گوشه ایستاده و هیچ کلمه از او نمیشنوید که حاکی از غرور یا پارسا خودش باشه او حتی سرش رو بلند نمیکنه و چشمانش رو به طرف خدا نمیگیره او به سینهش می کوبه که نشانی از فروتنی ندامت و توبه بود او اینطور دعا می کرد خدایا بر من گناهکار رحم کن عیسی در مورد دو مرد دو دعا و دو وضعیت با ما صحبت میکنه بعد او این دو اظهار راقیده رو میکنه او میگه بعد از اینکه مرد اول دعا کرد دعای او هیچ فیضی آیدش نکرد اما مرد دوم که حالت توبه و ندامت داشت وقتی به خانه می رفت عادل شمرده شده بود در این مثل شما یکی از زیباترین کلمات تحت جدید رو میبینید پولس رسول مهمترین رساله خودش رو برای این می نویسه که به ما مفهوم کلمه عادل شمرده شدگی رو بگه به طور خلاصه کلمه عادل شمرده شدگی یعنی چنان که من هیچ گناهی مرتکب نشدم عادل شمرده شدگی یعنی همین وقتی به گناهانتون اعتراف میکنید و به خون عیسی مسیح برای بخشش گناهانتون اعتماد میکنید طبق رساله پولس به رومیان گناه شما نه تنها بخشیده میشه بلکه پارسا شمرده میشید خدا شما رو پارسا به حساب میاره درست مثل اینه که هرگز گناهی مرتکب نشدید درست مثل اینه که زندگی شما مثل یک نوار کاست هست که وقتی خدا به اون قسمت که گناه ظاهر میشه میرسه نوار رو می بره و تمام قسمت گناه رو از اون جدا میکنه و بعد دوباره نوار رو میچسبونه. وقتی خدا در روز داوری به نوار زندگی شما گوش میکنه نه تنها گناه شما بخشیده و عف شده بلکه دیگه گناهی وجود نداره چنانکه گویی هیچ گناهی نکرده ای. در این مسئله زیبا عیسی عادل شمرده شدگی رو به تصویر میکشه و مژده اون رو به ما میده. عیسی به ما میگه که هر مرد و زنی، هر دختر و پسری که در وضعیت ندامت و توبه مثل اون خراجگیر دعا میکنه و این دعای ساده رو میکنه که خداوندا بر من گناهکار رحم کن، میتونه وقتی به خانهش برمیگرده مطمئن باشه که در نظر خدا پارسا شمرده شده. این داستان بسیار زیبایی هست چون خبر خوشی داره. اگه شما گناهکار هستید و این رو میدونید این داستان خبر بخشی برای شماست. وقتی به موضوع گناهانمون می رسیم یکی از مشکلاتمون اینه که ما چیزی رو که خدا به خاطر میاره فراموش می کنیم و چیزی رو به خاطر میاریم که خدا فراموش میکنه. خدا به یاد میاره که ما گناهکاریم، خدا هرگز فراموش نمیکنه که ما گناهکاریم، خدا به خاطر میاره که ما گناهکاریم، اما خدا وقتی ما به گناهمون اعتراف میکنیم اونها رو فراموش میکنه ما فراموش میکنیم که گناهکاریم به این دلیل که این همه گناه میکنیم ما فراموش میکنیم که گناه کاریم اما وقتی گناه میکنیم اونقدر اسیر بلای احساس گناه میشیم که نمیتونیم عواقب گناهمون رو فراموش کنیم همونطور که قبلا گفتم یکی از دلایل اساسی بیماریهای روانتنی احساس گناه است اما احساس گناه چیه احساس گناه خودداری کردن از فراموش کردن چیزیه که خدا فراموش میکنه خدا گناه شما رو فراموش میکنه چون عیسی بر صلیب مرد وقتی شما اعتراف میکنید خدا میتونه گناه شما رو فراموش کنه و اونو تماما از نوار زندگی شما قطع کنه اما مشکل ما اینه که گناهمون رو به یاد میاریم و گناهکاریمون رو فراموش میکنیم اما فکر میکنم این مسئله زیبای فریسی و خراجگیر به ما میگه که باید چیزی رو که خدا به یاد میاره به یاد بیاریم. هرگز مثل فریسی خودتون رو بی گناه و پارسا ندونید. هیچ وقت این واقعیت رو فراموش نکنید. شما گناهکاری هستید که با فیض خدا نجات یافتید. اما گناهکارید. شما همیشه گناهکاری هستید که نیازمند رحمت خداست. آیا تالا توجه کردید که یک الکلی که بهبود یافته همیشه خودش رو به عنوان یک معرفی میکنه. اونا ممکنه چهل سال هم پاک زندگی کنند اما هنوز خودشون رو یک الکلی میدونند دونند. به گفته یک کتاب مقدس ما گناهکاری و اگر گناهکارانی شدیم که با فیض خدا نجات یافتیم این به این معنا نیست که گناهکار نیستیم در اول یوحنا باب یک یوحنا میگه اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم خدا را دروغگو مورده ایم و از کلام او کاملا بی این خبر خوشی هست که مثل فریسی و خراجگیر به ما تعلیم میده گاهی تعالیم عیسی پر از وقایع عملی بود این مثل حداقل میتونه یک اتفاق واقعی باشه شاید عیسی در سر راه خودش به عریها در معبد اورشلیم عملا این رویداد رو شاهد بوده. او می‌بینه که فریسی بلند میشه با مشکل منیتش خطابه ای کوتاه در مورد خودش میخونه، برای خودش دعا میکنه و همونطور که عیسا شرط داده، محور دعاهاش من خود او هست. شاید عیسی اون خراجگیر رو می‌بینه که در گوشه ایستاده با حالت ندامت و توبه به سینه میکوبه و فکر میکنه که هیچ کس به جز خدا صدای او رو نخواهد شنید. به خدا میگه بر من گناهکار رحم کن باب 19 انجیل لغا به ما مثلی میده که میتونه واقعی تاریخی هم باشه در لغا 19 عیسی راهی عریها هست وقتی او به عریها میره قصد داره فقط یک روز در اونجا بمونه در این مرحله از خدمتش عیسی بسیار معروف است و همه میخوان که او رو ببینن انجمنهای خدمتی محلی قضای مفصلی در عریها آماده کردن وقتی عیسی وارد عریها میشه تمام اعضای نهادهای مذهبی آماده هستند که در این نهار بزرگ شرکت کنند. خراجگیر کوتاهی در عریها بود. او یک خراجگیر معمولی نبود. او سردسته خراجگیران بود. او تمام اتحادیه خراجگیران رو تحت نظر داشت که برای او کار میکردند. نام او زکا بود. همه او را می شناختند و از او نفرت داشتند. ما میخونیم که او قد کوتاهی داشت. عیسی داره در جاده پایین میاد. و میشه گفت تقریبا مثل یک مراسم استقبال رسمی هست. انبوه جمعیت در کنار راه ایستادن و زکای کتوله نمیتونه عیسی رو ببینه. پس میدوئه و از درختی بالا میره. وقتی عیسی به زیر اون درخت میرسه به بالا نگاه میکنه و میگه زکا او رو به اسم صدا میکنه. شاید به این خاطر بوده که اونها قبلا همدیگر رو دیده بودن. شاید زکا همون خراجگیری باشه که دربا دیدیم که در معبد داشت دعا میکرد و دلیلی که عیسی به عریها رفت این بود که کاری بکنه که امروز بهش پیگیری کردن میگیم من معتقدم که عیسی به عریها برای پیگیری یک تبدیل شدن رفت عیسی قصد داشت که تمام روز رو با زکا بگذرونه چون میخواست که چیزهایی رو با زکا درمیون بذاره عیسی شاید میخواست بگه زکا آیا واقعا به دعایی که در معبد میکردی معتقد هستی آیا اون توبه واقعی بود آیا اون حالت ندامت و توبه واقعی بود؟ زکا پس بذار بگم که لازمه چی هست؟ باید ازت سوالی بپرسم. میدونی معنی توبه چی هست؟ عیسی در تمام گفتگوهاش به مردم وعده ی هیچ نجاتی رو نمیده تا زمانی که نشانه های توبه و پشیمانی رو در اونها ببینه. همون چیزی که یحیای تعمید دهنده به اون میوه های توبه میگفت. ملاحظه کنید در این گفتگو وقتی زکا گفت که او مال مردم را که در عریها گرفته بود به با اونها باز خواهد گردون اون وقت بود که عیسی اعلام کرد که نجات در خانه این سردسته خراجگیران آمده. توبر اونقدر راحت تلقی نکنید اونطور که بسیاری از مردم امروزه راه میافتند و میگن من توبه کردم من گمان میکنم بر اساس گفتگوهای عیسی با زکا و با زن سامری بر سر چاه با مرد ثروتمند جوان نمیتونیم موضوع توبه رو نادیده بگیریم خودتون توی کتاب مقدس جستجو کنید متوجه بشید که توبه چی هست و هر کاری که لازم انجام بدید تا از مسئله جدی و حیاتی نجاتتون سرسری رد نشید توبه برای هر کدام از ما متفاوته لازمه که از چی توبه بکنیم توبه بخش لاینفک که آمدن به مسیح هست وقتی ایسا تصمیم گرفت که با منفورترین مرد عریها یک روز وقت بگذرونه، اون روز باعث عصبانیت همه مردان از جمله مردان مذهبی شد. وقتی عیسی گفت زکا از درخت پایین بیا امروز میخوام به خانه تو بیام اونا خیلی عصبانی شدن. من شما رو نمیدونم اما وقتی بچه بودم به کلیسا میرفتم به من یاد دادن که عیسی به خانه زکا رفت تا چای بخوره. اما این چیزی نیست که توی متن کتاب مقدس نوشته شده باشه. باب نوزده لغا به ما میگه که عیسی تمام طول روز رو در عریها در خانه زکا با او بود. بارها در کتاب مقدس همونطور که بررسی کردیم گفتیم که بعضی از این ها میتونن به زیبایی به صورت نمایشنامه به تصویر کشیده بشن. این هم از جمله اون ها هست. من خیلی دوست دارم این داستان رو به صورت یک نمایشنامه سه تماشا کنم. پرده اول از اونجای شروع میشه که عیسی زکا رو در معبد میبینه و توبه او رو ملاحظه میکنه در پرده اول صحنه دوم عیسی زکاو را در عریها می‌بینه و همه رو عصبانی میکنه چون یک روز تمام در خانه زکا وقت گذرونده بود اگه من نقاش بودم سعی می‌کردم که این منظره رو در عریها نقاشی کنم مورخ یهودی جوسیفوس میگه که عیسی مرد بلند قامتی بوده و از داستان زکا میدونیم که زکا قد کوتاهی داشته دوست دارم تابلویی از عیسی بکشم که مردی قد بلند در جاده پایین میاد و دستش رو دور این مرد قد کوتاه کلاه بردار انداخته و مردم در این باره هم همه و بعد پلاکی برنزی زیرش نصب میکردم که آیه ده از لغا 19 روش نوشته شده بود که پسر انسان آمد تا گمشدگان را بجوید و نجات دهد تمام این پرده اول هست پرده دوم در خانه زکا اجرا میشه ما در این باره چیزی جزی نمی دونیم که ایسا تمام روز رو در خانه زکا بوده ما درباره های رد و بدل شده در اونجا چیزی نمیدونیم مضمون پرده دوم تا ابد محو شده است. فقط دو نفر میدونند که در این پرده چی گذشته. پرده سوم در انتهای روز شروع میشه، تقریبا نزدیک غروب هست که اونها از خانه زکا بیرون میاد. وقتی اونها از خانه زکا که احتمالا کاخی چند طبقه بوده بیرون میان زکا شروع به صحبت میکنه و اولین کلامی که از دهانش خارج میشه این بوده: الهایی خداوند نصف ما خود را به فقرا می دهم و اگر چیزی ناحق از کسی گرفته باشم، چهار برابر به دو رد می کنم. وقتی زکا اینو میگه گه، در پاسخ میگه امروز نجات در این خانه پیدا شد، زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم هست. مهمترین پرده این نمایش نامه، پرده دوم هست. شما گمون می کنید در طول تمام روز بین آن دو چه چیزی رد و بدر شد. بر اساس پرده سوم و برخی گمان زنی های مقدسین اونها باید در مورد مفهوم توبه صحبت کرده باشند که توبه یعنی تغییر دادن افکار، توبه یعنی تغییر اراده، توبه یعنی تغییر قلب و توبه یعنی تغییر مسیر و بازگشت از مسیر قبلی و رفتن به مسیر مقابل توبه یعنی دوباره اندیشیدن یادتونه که یحیای تعمید دهنده تا کسی میوه های توبه رو نشان نمیداد، او رو تعمید نمیداد. وقتی مردان مذهبی برای تعمید آمدن، یهیای تعمید دهنده گفت ای افعی زادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید. اکنون سمره شایسته توبه بیاورید. سمره توبه چیه؟ سمره توبه اینه که شما نشانه هایی ظاهری از خودتون بروز بدید که افکارتون رو تغییر دادید، ارادتون رو تغییر دادید، قلبتون تغییر کرده و مسیرتون رو تغییر دادید. همینطور نشون میده که از این که در تمام زندگی به راه خطا رفتید پشیمون هستید. نشانه های توبه چیه؟ توبه برای هر کسی معنای متفاوتی داره. در یوحنا باب چهار میبینیم که عیسی با زنی گفتگو میکنه. عیسی با این زن درباره تولد تازه صحبت میکنه و در مورد آب زنده با او صحبت میکنه. عیسی میگه ای زن آیا دوست نداری آبی داشته باشی که در تمام عمر آتش تو رو سیراب کنه؟ وقتی زن میفهم منظور ایسا چیه، به او میگه از این آب به من بده. بعد عیسی به او میگه برو شوهرت رو صدا کن. زن میگه من شوهری ندارم. اگه امروز بود، ما به او میگفتیم ما رو دست ننداز. تو پنج تا شوهر داشتی با اون مردی که الان باهاش زندگی میکنی تو نیست. توبه برای او به این معنی بود که باید زندگی خانوادگیش رو اصلاح کنه. اون مرد ثروتمند جوان رو به خاطر میارید؟ اون مردی که ثروتمند و مذهبی بود و به تمام اصول مذهبیش پایبند بود اون نزد عیسی اومد و گفت چی کار باید بکنم تا حیات ابدی داشته باشم مفهوم توبه برای او چی بود عیسی به او گفت پنج کار انجام بده به او گفت برو هر چه داری بفروش اون رو به فقرا بده و بیا و منو پیروی کن معنی توبه برای اون جوان این بود او نتونست این کار رو بکنه عیسی دید که او داره میره دید که داره از نجات دور میشه چون نمیخواست توبه کنه وقتی که ایسا تمام روز رو با زکا سپری کرد باید به او اینطور گفته باشه اگر زکا همون باجگیری بوده که در معبد در باب 18 دعا میکرده ایسا باید به او گفته باشه اگر تو واقعا در اون دعایی که در معبد میکردی صادق هستی پس این همه افرادی که توی عریها بهشون بد کردی چی میشن کسایی که فریبشون دادی چی توبه یعنی تو باید در این مورد کاری انجام بدی احتمالاً عیسی و زکا سر این مسائل با هم صحبت کرده بودند زکا آدم بسیار بسیار ثروتمندی بود اما علی رغم ثروت فراوانی که داشت یک باجگیر فاسد بود عیسی باید گفته باشه زکا برای تو توبه یعنی هر پولی که از مردم دزدیدی باید به اونها پس بدی ایسا به اون جوان ثروتمند گفت که باید از پولش خلاص بشه و به زکا هم گفت که باید از پولش خلاص بشه وقتی عیسی به جوان ثروتمند که مذهبی و پایبند اخلاقیات بود و در جامعه احترام داشت گفت که باید داراییش رو بفروشه احتمالاً او آدم مجردی بود که برای پیروی از عیسی ایجاب میکرد که تمام داراییش رو بده او نتونست این کار رو بکنه و این کار رو انجام نداد و عیسی دید که او بدون اینکه نجات رو گرفته باشه از او دور شد اما وقتی عیسی با زکا تمام طول روز رو صحبت کرد واضحه که به او گفته بود که باید پول مردم رو پس بده به این خاطر رو میگم که وقتی اونها از خانه زکا بیرون اومدن زکا ثمرات توبه رو از خودش نشون میده و میگه خداوندا این کلمه کلیدی در گفتگوهای عیسی هست وقتی کسی توبه میکنه و میخواد نجات پیدا کنه او رو خداوند خطاب میکنه زکا میگه خداوندا من نصف داراییم رو به فقرا میدم و نیم دیگرش رو که در واقع منظورش تمام ثروتش بوده چهار برابر به هر کسی که سر او کلاه گذاشتم پس خواهم داد معلوم میشه که زکا خیلی ها رو فریب داده بوده چون فهمید که این نیمی از ثروت او رو خواهد گرفت و مشکل او رو حل خواهد کرد او باید رضایت بسیاری از مردم رو در عریها جلب میکرد اما وقتی زکا گفت که این کار را خواهد کرد بعد از اون بود که عیسی گفت امروز نجات به این خانه آمده است چون این نشانه ی توبه زکا بود در گفتگوهای عیسی همیشه این رو ملاحظه کنید که عیسی تا زمانی که نشانه های توبه رو در کسی نبینه به او وعده نجات نمیده نجات بدون توبه به هیچ وجه امکان نداره من معتقدم که امروزه ما در کلیسا هامون خیلی ها رو داریم که سردرگم و در اوهام هستند چون به کلیسا آمدهاند چون مسیحی شدهاند فکر میکنند که مسیحی هستند و هرگز کلمه توبه به گوششون نخورده و نمیدونند که نیاز به توبه دارند بعضی ها حتی نمیدونن توبه یعنی چی؟ من فکر می کنم اگر امروزی سا بود تا زمانی که سمرات توبه رو در اونها نمیدید چنین دلگرمی به اونها نمیداد. مقایسه این دو مرد با هم جالب خواهد بود زکا سر دسته باجگیران و مردی که به او جوان ثروتمند گفتیم. اولا ببینیم اونها چه نقاط مشترکی دارند هر دو ثروتمند هستند، هر دو یهودی هستند. هر دو بسیار مشتاقند که عیسی را ببینند. جوان ثروتمند دوان دوان میاد و در مقابل عیسی زانو میزنه. زکا برای دیدن عیسی میدوه و از درختی بالا میره. هر دوی اونها معتقدند که به عیسی نیازمندند. هر دوی اونها میخوان بدونن که برای نجات چیکار باید بکنن. اونها نقاط مشترک زیادی دارند. عیسی به هر دوی اونها میگه که برند و به عنوان نشانه توبه ثروتشان را بدهند. این دو شخصیت وقتی اونها رو با هم مقایسه می کنید خیلی اهمیت پیدا می کنند تفاوت های بین این دو مرد رو ملاحظه کنید؟ اولا وقتی به اونها گفته میشه شه که توبه کنند زکا توبه میکنه اما مرد ثروتمند جوان توبه نمیکنه اینجاست که می بینید این دو تعلیم در کنار هم قرار می گیرند در مسئله فریسی و بازگیر پیام پیام فیضه من و شما با فیض نجات پیدا کردیم نبا اعمال. این تعلیمی که در لغا هجده داده شده در مورد کسانی هست که به پارسایی خودشون مطمئن هستند حقیقت رو درست متوجه بشید شما نمیتونید راه رسیدن به ملکوت خدا رو بخرید یا پولتون رو بدید تا نجات پیدا کنید اگر به پارسایی خودتون برای نجات مطمئن هستید به چیز نادرستی اعتماد کردید شما به خاطر کاری که انجام دادید پارسا شمرده نشدید با سعی که کردید پارسا شمرده نشدید یا اینکه چقدر پول خرج کردید پولاس این رو به صورتی جامعه در کتاب رومیان توضیح داده تنها راهی که گناهان شما میتونه بخشیده بشه تنها راهی که شما میتونید در نظر خدا پارسا شمرده بشید فقط و فقط با فیض خدا هست. اگر راه دیگری می بود اون موقع چرا خدا باید پسرش عیسی مسیح رو از آسمان به زمین میفرستاد تا مسلوب بشه وقتی عیسی دعا کرد گفت ای پدر من اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد به خواهش من بلکه به اراده تو پدر به پسر خودش نگاه کرد و گفت این امکان نداره تو باید مسلوب بشی آیا حالا که خدا پسرش رو به زمین فرستاده و مسلوب شده اصلا مفهومی داره که به خدا بگیم خدایا لازم نبود این کارو بکنی من خودم میتونستم با رعایت ده فرمان یا با انجام اعمال مذهبی نجات خودم رو محیا کنم حولست در بسیاری از جاها در نوشتهاش به ما میگه اگر نجات کسب کردنی یا به دست آوردنی بود و میشد با انجام عمال نجات پیدا کرد پس مسیح بیهوده مرد. شما نمیتونید بگید مسیح بیهوده مرد. بنابراین این تنها راهیه که شما پارساش مرده میشید. با فیض خدا و با اعتراف به این هست که خدایا یا من گناهکارم بر من رحم کن. این در مسئله فریسی و باجگیر. با گفتگوی عیسی با زکا به تصویر کشیده شده وقتی زکا رو با جوان ثروتمند مقایسه میکنید نتیجه حیرت انگیزی که بهش میرسید اینه جوان ثروتمندی که مذهبی و معتقد به اخلاقیات بود شخص محترمی بود و در جامعه مورد علاقه همه بود آدم خوشنامی بود اما توبه نکرد بنابراین میتونیم بگیم اگر چنانچه او بعدها توبه نکرده باشه نجات نیافته اگر چه زک آدم شیادی هست با وجودی که مذهبی نیست، پایبند و اخلاقیات نیست و احتمالاً هیچ صداقتی نداره و منفور تمام مردم هست با این حال توبه میکنه و این نشون میده که او نجات پیدا کرده و امروز در آسمانه آیا عظمت مقایسه بین این دو رو میبینید در این اناجید شما بارها و بارها این موضوع رو میبینید که دو مرد روی نیمکتی نشستن. شما کدام یک از این دو هستی آیا شما جوان ثروتمند مذهبی هستید که برای نجات به پارسایی خودش مطمئنه؟ این دروغی فریبنده است. به لحاظ روحانی بر اساس عهد جدید آیا شما مثل مرد جوان ثروتمند هستید یا مثل زکاه؟ آیا می‌خواهید اون حالت توبه را بگیرید و بگید خدایا من گناهکارم به من رحم کن؟ آیا می‌خواهید بر کاری که عیسی بر روی صلیب برای شما کرد اعتماد کنید و ایمان بیارید تا نجات پیدا کنید؟ عزیزان افراد مذهبی در تمام دنیا سعی دارند با انجام آینهای مذهبی به آسمون برسن. اما همونطور که در درس امروز دیدیم مذهبی بودن از داشتن رابطه با خداوند متفاوته. رابطه فقط زمانی شروع میشه که ما اعتراف میکنیم نیازمند ناجی هستیم و از راهی گناه توبه میکنیم و به خداوند ایسا به عنوان ناجی اعتماد میکنیم. دعا میکنیم که این درس ها شما رو در ایمانتون تشویق کنه و کمک کنه که در دانش کتاب مقدسی رشد کنید تا موجد نجات رو به دیگران هم برسونید. ما منتظریم که در جلسات بعد با ما همراه باشید تا برنامه بعدی برکت، فیض، آرامش و شادی خداوند رو بر شما و خانوادتون میطلبیم.